تا به اینجایی کار شما نکات خیلی مهم و اساسی رو از علم هیپنوتیزم یاد گرفتید فهمیدید تونل واقعیت چیه فهمیدید اصول هیبنوتیزم چیه و فکر نکنید اینها مطالب ساده و ابتدایی هستند بلکه خیلی خیلی مهمن و شما باید دقیقا توی اینها مسلط باشید که اصلا بخواید همین الان درس فعلی رو گوش کنید و خدمت شما عرض شود که امروز درمره پریساپوزیشن ها یا پیشنگاره ها صحبت می که یه جورایی بدیهیات و فرضیات محسوب میشن یعنی یکی از تکنیک های خیلی قدرتمند هیپنوتیزم برای اینکه شما بتونید روی یک فرد اثر بذارید روی شرایط اثر بذارید روی زندگیتون حتی به متافیزیکی و با قانون جذب اثر بذارید و به عبارتی وارد تونال های واقعیت دیگه بشید همین تکنیک مرتبط با پریساپوزیشن هاست که واقعا نمیتونید تصور کنید که چقدر قدرتمنده ما گفتیم شما میتونید وارد تونل های واقعیت مختلفی بشید و این در واقع ساختار جهان این اصل اساسی عملکرد کرده که شما در واقع دارید حرکت می‌کنید بین تونل های واقعیت مختلف و در حال حاضر ما داریم در روی پریسا پوزیشن‌ها صحبت می‌کنیم که یکی از تکنیک هاست، یکی از روش هاست که به شما کمک میکنه که یه هیپناتیک لوب رو ایجاد کنید وارد یه تونل واقعیت بشید اما ممکنه الان این سوال براتون پیش بیاد که اصلا پریساپوزیشن چیه؟ پیش پیش انگاره ببینید پیش ها یا پیش انگاره ها یکی از تکنیک هیپنوتیزمی هستن و یکی از ابزارهای های هیبناتیزم هستن که خیلی نامحسوس و فوق العاده قوین که توی اونها شما در واقع یه چیزی رو به صورت زمنی بدیهی فرض می کنید. به صورت زمنی اون رو پیش فرض می کنید. توی حرفاتون، توی رفتارتون خب خیلی اوقات شما میرید با این نفر تعامل داشته باشید مثلا ممکنه برید و بخواید رابطه اشقی رو با این نفر آغاز کنید برید با این نفر دوست شید خب بعد پیش فرضی که توی ذهنتون هست به صورت نانوشته اینه خب من کم ارزشترم این آدم ارزشمندتره خب و جالب این پیشفرض ممکنه توی زبان بدنتون باشه توی نحوهی راه رفتنتون باشه توی نوع کلماتی که استفاده می کنید باشه خیلی وقات شما مثلا ممکنه یک کاری رو می‌خواید انجام بدید و بگید که خب من تلاشم رو کنم و این کلمه تلاش خودش پیشفرض زمانی داره توی خودش یعنی انگار قرار کار سختی باشه که شما می‌خواید تلاش کنید خب به این کلمه تلاش دقت کنید یا یعنی اینکه خیلی اوقات شما اصلا نوع نشستنتون، نوع قدم زدنتون، نوع حرف زدنتون با دیگران کلی پیش داره یعنی انگار شما مثلا ممکنه خودتون رو ذاتن بی ارزش فرض کنید یا مثلا شما میتونید یه فردی که توی ریل استیت یا مشاهر املک کار میکنن رو بررسی کنید که یه خب هی زنگ میزنه به مشتریاش، هی زنگ میزنه، هی زنگ میزنه و نکته جالب دقیقا همینه پیشوررز این زنگ زدن های این آدم این منتکشی های این آدم از مشتری دقیقا اینه که انگار خودش بیاارزشه و باید بدونید حجم بزرگی از اثرگذاری های ناخودآگاه شما روی دیگران یا حتی روی خودتون این هست که شما نسبت به پیشوررز ها آگاهی ندارید و دارید اون رو بر خلاف منافع خودتون استفاده می کنید به کار ملک بدونید که بدونید واقعا چهجوری کار میکن و، جالب بدونید توی استفاده از قانون جز برای یک خواسته برای وارد شدن به یک واقعیت موازی دیگه هم شما دارید در واقع همین کار میکنید. شما دارید دائما پیش فرصایی رو به کار مرد. مثلا کسی رو تصور کنید که داره تصویر سازی ذهنی میکنه ولی همزمان منتظره. هی hey, داره منتظر میمونه هی hey, چک میکنه ببینم مثلا اون چیزی که میخوام رخ میده یا نه و انتظار درجان هست دیگه پیشفرزش پیغام زمینی شینه که انگار یه چیزی هنوز نیست من باید منتظرشم که بیاد و در نتیجه این فرکانس نهایی ارسالی هست یعنی ببینید اگه شما پیشفرز و پیش پیشنگارهی غلطی داشته باشید مطمئن باشید هزاران تلاش هم که بکنید یه جورای مشکلتون حل نمیشه چون شما یک پیشفرض مشکلدار رو دارید ممکن شما میرید با یه نفر حرف بزنید قانعش کنید و بعد تایه ذهنتون نگاه... نگاهتون اینه خب این که اصلا قبول نمی کنه. و همین پیشفرز اولیهی که وارد می کنید میاد کارو خراب میکنه میاد باعث میشه که در واقع شما زبان بدنتون نوع کلماتتون رفتاران ناخدگاتون همه جوری باشه که دقیقا اون فرد هم نپذیره قانه نشه پس ببینید من از شما دعوت می به عنوان یک تمرین از امروز شروع کنید به این که دقیقا بررسی کنید ببینید چطور میتونید پیشفرص ها رو توی ارتباطات روزمرتون به کار ببرید و حتی اونها رو شناسایی کنید. ببینید نوع نشستنتون چه نوع پیش انگار هایی خودش داره ببینید نوع شروع کردن حرفاتون با دیگران نوع کلمات که استفاده میکن اینا چه در واقع پیش انگاره هایی داره و زمانی که به این دقت کنید می که ارتباطاتتون رووم میشه و در واقع این خود شما هستید که خیلی اوقات میاید یه سری پیشفرها رو به کار میبرید و خودتون دارید مان تراششی می کنید توی ارتبازاتتون با دیگران توی در واقع تغییرات که از درون میخواد ایجاد کنید. خب خیلی اوقات مثلا شما ممکنه میخواد یه نفر هپنوتیز کنید بعد یه سری عاداتشو رو تغییر بدید. خود این کلمه ای تغییر کلمه یکی پیشفرض داره خودش یعنی کار سختی انگار توش سختی داره. ولی یه موقع شما میگید که، به فرض مثلا ممکنه به یه نفر بگید که من میخوام تو رو به قدرتی در درون خودت وصل کنم خب که به فرض فلان قابلیت رو پیدا کنی فلان عادت رو بتونی عوض کنی یا ترک کنی یا هر چیزی و دقت کنید که حالا این کلمه کماکان پیش داره وصل کردن یعنی انگار چیزی قطعه که میخواییم وصل کنیم اما حسنش دقیقا اینه که اون بار منفی تغییر رو نداره خب یعنی یه چیزی انگار هست انگار یه سیم راحت شما میخوای وصل کنی بهشایی خب حد جالب خیلی ممکن توی رابطه عشقیشون دائما این پیش فرسا رو به کار ببرن و مشکلات رو در واقع خودشون پریساپوز کنن ایجاد کنن مثلا میرن میگن تو مشکلت با من چیه خب و با این کار شما دارید پیش فرض که اون فرد یه مشکلی در واقع با شما داره خب و این باعث میشه که پس از این حین ارتباطاتش با شما در واقع رفته رففتمون مشکلات پر رنگ چون شما دارید دائما تو ذهنتون حین حرف زدن با اون فرد دائما میگید که تو مشکلت با من چیه؟ و این دقیققا اثر میذاره. پیشفرسا خیلی قویه. جالبه توی جایگاه های اجتماعی هم مثلا خود نوع لباس که شما میپوشید یه پیشفرزی در خودش داره. یا خیلی جا شما میبینید مثلا یه عد توی مکان بالاتری میشینن. ان نظر ارتقایی و این دوباره پیش که القا میکنه که خب این آدم بالاتر از توه خب نوع لباس ها میتونه پیش فرض داشته باشه جایگاه های شما میتونه پیش داشته باشه کلماتی که به کار میبرید نوعی که میشینید اصلا اینکه چطوری نشستید خب خیلی اوقات یه سری افراد حین مذاکره تجاری یا هر چیزی خیلی متمایل میشن و خم میشن به سمت طرف مقابل این پیش نیازمند تر بودن شماست و خیلی زرافت های دیگه که میخوام در واقع به شما این رو بگم شما باید کم کم با تسلط به پیش انگاره ها و پیش فرس ها دقت کنید که اونها رو چطوری به کار میبرید و بعد اونها رو دقیقا در واقع به نفع خودتون استفادهش کنید نه اینکه بیایید همون اول کار قبل از شروع ارتباط با یه فرد بفاز یه سری پیش فرس ها رو ایجاد کنید که در واقع مشکل ایجاد کنه براتون. بار مشکلات رو بسازه مشکلات که تا شاید وجود خارجی هم نداشتن ولی چون شما خودتون پیش فرض می‌کنید این مشکل ایجاد میشه مثال خیلی متنوع میتونن باشن و بعدها حالا بیشتر هم توصیه خواهیم داد جالبه مثلا یکی از پیش فرض‌های جالبی که تبلیغات مکدونالد رو شد خیلی معروف کردیم بود که جملهش در واقع این بود به فارسی ترجمه شدهش اش را اگه بخوایم بگیم که چرا رنگ های زرد و قرمز شما رو گرست نمی خب و خود این جمله حتی این رنگ زرد و قرمز برمی به رنگ مکنونال یعنی برند مکنونال بیشتر روی این رنگ های جورایی ما که رنگ هایی هستن که بیشتر برمی به چاکرهای پایینی یعنی حس نیاز و گرستنگی و بقا و اینها که این هم هدفنده ولی به صورت کلی این جمله داره پیش‌فرض می‌کنه که انگار اول از همه رنگ زرد و قرمز دارن گرسنه می‌کنن شما رو و بعد به صورت غیر مستقیم داره میگه که مکدونالد شما رو داره گرسنه می‌کنه و این رو حتی به عنوان یک سوال از شما مطرح می‌کنه که ذهنتون اصلا بره یه جای دیگه ولی این پیش‌فرض یه جورایی بشینه به ذهنتون و این یه مثال تبلیغاتی هست که در واقع میشه استفاده کرد شما ممکنه مثلا حتی توی خونه مثلا بگید که الان میری بیرون یا عصری یا مثلا الان ها رو میبری بیرون یا عصر که داری با دوستت میری به فرس این خودش یه تو خودش داره و پیش‌فرز ساده اون اینه که انگار شما می‌خوای بری بیرون حالا بصر الان یا عصرشه شه و تازه اشغالا هم میخوای ببری بیرون خب و نکته اینجاست که توی استفاده از ها شما باید پیش‌فرزی خیلی ظریفی رو انتخاب کنید این یه نکته است یعنی ظریف و نامحسوس باشه چیز نمیشه که مقاومت ایجاد شه توی طرف مقابل مثلا بگیم من اصلا رو بیرون نمیخوام ببرم خب نکته اضافی ترش همین هست که توی صلاحیت توی نوع بیان توی زبان بدنتون شما باید حالتی رو ایجاد کنید که فرد مقابل اصلا نتونه وارد تونل واقعیت دیگه‌ای بشه که پیشنهاد شما رد کنه یا اینکه بخواد حتی تیکه‌ای بندازه در جواب اگه این اتفاق نیفته یعنی هنوز زبان بدن و ویژگی‌های گفتاری شما اون صلاحیت کافی رو نداره همین ما دیدیم که برخی یه جوری حرف میزن که انگار ما به جورایی اصلا میپذیریم خیلی باشون چونه نمیزنیم و این دقیقا سلاحیتیه که به صورت پیش انگاره و پیش فرص توی شخصیت و توی زبان بدن و جزیت دیگه وجودشون نهادینه شده و به علاقه این که میشن تو در بایین هم اشاره کرد که هم حالا بیشتر بحث میکنیم که شما یک پیش انگ این پیشنگا رو میتونه قبلش یک کانفیوژن ایجاد شه یک حالت گیج کردن طرف مقابل ایجاد شه که ذهنش خیلی آماده مزه پروندن و رد کردن پیشنهاد شما نباشه و اینکه بعدش هم میتونید زود صحبت رو ادامه بدید تا اینکه از اون هدفی که در واقع مد نظرتونه اون هدف به بار بشینه و اون فرد نتونه از اون هدف فرار کنه یه جورا. یعنی ذهن به سرعت درگیر کنید جوری که فرد فرصت نداشته باشه برگرده به اون پریساپوزیشن پوزیشنی که شما به کار و فکر کنه یا نظر دیگه ای بده و حالا اینا همه چیزهاییه که میشه مثالهاشو مطرح کرد و روی مثالهای مختلف کاملا بحث کرد